خب بسم الله الرحمن الرحیم المبتدع و الخبر و تطابقهما مبتدع و خبر و متابقته آن دو. شریسون ده قد بفرما قسم از امسلو را ورده النمیرو شریسون پلنگ بدخوست الکلبو الیفون سگ خونگیست النجم اللامع الیف یعنی اسمون اولفت میاد ستاره درخشان است البطط صابحتون مرغابی شنا کننده است زینبو مطیعتون زینب فرمانبردار بردار است المدینه تو شهر آباد است النمر رو شرسون مبتدا شرسون خبرش الکلبو مبتدا مرفوب با زمه الیفون خبرش زمه با مرفوب با زمه النجمو لامعون النجمو مبتدا لامعون خبر مرفو با زمه البطة مبتدا لا مؤنهم خبرش البطة صابحتون زينب مطيعتون المدينة عامرتون هم شنين فارق قروه أول بابروه دوم منك انا مفرق مذكر بودن انا مؤنسات النمر مذكر خبرش هم مذكر البطة مؤنس خبرش هم مؤنس أليف يعني أز ألفت مياد هم بهش میگن اهلی و هم هم نشین بودن هم بودن البته تو خب اینا مذاکر مزاکر اتلمی خوب ببین ما این درسی که امروز میخونیم مبتدا و خبر و تطابق و و مطابقت داشتنش اینا باید از چند جهت با هم بگه مطابقت داشته باشه یکی از جهت مفرد و مصنع و جمع یکی از, از لحاظ مزاکر و مونس بودن نمر مفرد بود و مزاکر شریسون که خبرشه مفرد بود و مذکر حالا البته تو صابحتون مفرد مؤنس صابحتون مفرد مؤنس در سه سال بعدی ما التلمیذانی حاضرانی داریم مسنای مذکره حاضرانی هم مسنای مذکره التلمیذان میگیم مبتدا خبر مرفو با الف حاضرانی التلمیذانی مبتدا مرفو علامت رف الف حاضرانی خبر مرفو علامت رف الف. الکتابانی جدیدانی الخفیرانی صاحرانی الخفیرانی صاهرانی یعنی دو تا بیدارن. بیدارند خب اگر اینجا پس مطابقت دارند اینا مصنّی مذکرند خبرشون هم مصنّی مذکر در در مثال بعدی ما سه مثال بعدی مصنّای مؤنث داریم که خبر هم مصنّای مؤنثه البنتانی مجتهدتانی ال مسمرتانی الحجرتانی واسعتانی پس مبتدا باید با خبرش مطابقت داشته باشه یک در جنس مذکر مواند بودن دو در تعداد شود. اگر اون مفرد مفرد باشه اگر اون مسنعه خبر مسنعه باشه اگر مبتدا جمعه خبر هم جمع باشه سم سال بعدی جمع مذکره خبر هم جمع مذکره المحسنون ممدوحون التلامیذو از کیا القصال مواقبون حالا فرقی نمیکنه این جمع چه جمع مذکره سالم باشه چه جمع؟ مکسر باشه فرقی نداره المحسنون ممدوحون المحسنون میگیم مبتدا مرفو با واف ممدوحون خبر مرفو با واف التلامیزو ازگیا التلامیزو و علیکم السلام مبتدا مرفو با زمی، از ازگیا و خبر مرفوب با زمه الكسالا مبتدا با تقدیری معاقبون خبرش هست مرفوب. با واض السیّدات موحداتن السیّداتو جمع مؤنث هست موحداتون هم خبرش جمع الشجرات مورقاتن او مورقاتون ببین اگر جمع ما جمع مکسر باشه جمع چی باشه در تطبیق مکسر غیر باشه در تطبیق میتونه خبرش جمع باشه و میتونه مفرد باشه مفرد معنلس ما میتونیم بگیم الشجرات و مورقاتون میتونیم بگیم الشجرات و مورقتون القصور و و میتونیم بگیم القصور و ولی در جمع مذکر سالم نه اگر جمع مذکر سالم مبتدا جمع مذکر سالم بود باید خبرش جمع, جمع باشه متوجه شدید؟ مانند المحسنونه ممدوحونه دیگه نمی بیتونیم بگیم المحسنونه ممدوحونه مفرد بیاریم پس این دقت رو داشته باشید اگر مبتدا مفرد بود خبر چی باشه؟ مفرد باشه اگر مبتدا مصنع بود خبر مصنع باشه اگر مبتدا مذکر بود خبر مذکر باشه اگر مهنس بود مهنس باشه بیایید قاعده رو خودش توزیم ده قاعده صد دوم کتاب الخبر یطابق المبتدا خبر مطابق با مبتدا هست فی الافرادی و التثمیتی و الجمعی در چه چیزی مطابقش هست در مفرد بودن در مسنب بودن و در جمع بودن و التذکیری و التانیس و در مذکر و مونس بودن در یک حالت باش مطابق نبود زمانی که مبتدا جمع مونس بود ولی غیر آقل ولی چه؟ غیر آقل اونجا ما میتونستیم خبرشو مفرد مونس بیاریم میتونستیم جمع بیاریم. مانند از شجراتو موریقتون یا از شجراتو موری قاتون و تذکیری و تحنیس و در مذاکر و بودن باید مطابقت داشته باشه مبتدا با خبر خبر مطابقت داشته باشه با مبتدا در این چیزا سد و سه اذا کان المبتدا و جمعن لغیر آقل زمانی که مبتدا جمع جمعی بود برای غیر آقل ماننده الشجرات ببینید شجرات جمعه آیا برای آقل یا غیر آقل غیر آقل بس زمانی که مبتدا جمع عاقل بود يجوز الاخبار عنه جایز است خبر دادن برای اون مبتدا بالجمعی به وسیله جمع و بالمفرد المؤنث و به وسیله مفرده مانند مثال دو مثال آخری الشجرات مورقاتن امورقاتن الشجرات جمع مؤنث سالم ولی مال غیر عاقله ما پس ما میتونیم خبرش رو جمع بیاریم و میتونیم مفرد مهندسش بیاریم یعنی جمع مؤنث یا مفرد مهندس همچنین اگر جمع مکسر بود فرقی نداره همچنین اگر چی بود؟ جمع. مثالش آخریه ماننده القصور، القصور جمع مکسره القصور چه؟ جمع مکسره آلیاتون خبرش میتونیم خبرش رو جمع مؤنث بیاریم و می توانیم خبرش رو مفرد مؤنث بیاریم بگیم القصور و آلیاتون و میتونیم بگوییم القصور و آلیاتون آلیاتون پس قاعده 103 میگه زمانی که مبتدا جمع برای غیر عاقل باشه حالا اون جمع چه جمع مکسر باشه چه جمع مؤنث باشه خبی چرا نیاورد اگر جمع مذکر باشه؟ چون ما جمع مذکر سالم که برای غیر آقل باشه نداریم چون جمع مذکر سالم همیشه برای چی درست میشن؟ برای آقل مثلا از المسلمون، المؤمنون الى آخر ما جمع غیر آقل داریم جمع مکسر یا جمع موننس مثل سماوات جمع سالم سالمه ولی برای قیر آقله و جمع مکسر مثل کتوب مثل, مثل دیگر پس اینا دو قاعده خیلی تلاعی بودند که اینجا آورده بود که ما در قسمت مبتدا و خبر باید اونا رو چکار کنیم؟ رعایت کنیم اما درس بعدی خبر المبتدا ای یکول جمله جملتن او شبه جملتن دقت داشته باشید خبر مبتدا زمانی که جمله باشه یا شرح جمله باشه زمانی که جمله باشه یا قبلنها ما خوندیم خبر یا مفرده یا غیر مفرد مثلا اگر بگیم الرجل قائمون میگیم الرجل مبتدا قائمون چیش؟ خبرش چون جمله ما اسمیه دیگه فیلی ما اینجا نداریم هر دوتا اسم نه به اولی میگن مبتدا و به دومی خبر ولی ما یک خبرهایی داریم که مفرد نیستن مانند این مثالی که اینجا بیاره دقت داشته باشید در امثل الحرکت تقوی الانولاتی حرکت ازولات رو تقویت میکند اینجا جمله ما اسمیه یا فعلیه؟ اسمیه با اسم شروع شده الحرکت الفلام داره اسم دیگه خب اگر ما بخواهم اینو ترکیب کنیم میگیم الحركة مبتدا، چون جملای اسمیه مبتدا و خبر دارن دیگه، همانطور که جملای فعلی, فعلی فعل فاعل دارند، میگیم الحركة مبتدا مرفوب زمّه، چون مفردی، میگیره تو تقوی میگیم فعل مزارع، فاعل تقوی چه هر فعل فعلی فاعلی داره، هر فعل معلومی، فاعلی، فاعلش چیه؟ میگیم هیه هست که به حرکت برمیگرده الحرکتو تو قوی حرکت تقویت میکنه قوی میکنه پس هیه شد فائلش الازولاتی میشه مفعول به قوی میکند ازولات را چرا؟ فعل عمل, شو... عمل میکنه روی ازولات مفعول به اونی که عمل روش واقع میشه خب عذلاته شد مفعول بهی علامت نصبش کسره چرا چون جمع مؤنث سالمه هرگاه جمع مؤنث سالم منصوب شد کسره میگیره این فتحه نمیگیره ولی اگر مفرد منصوب شد فتحه میگیره رأی تو ولی دیگه این چون جمع مؤنثه کسره میگیره کسره به جای فتحه همون اعراب فرعی که شما خوندید خب حالا هر مبتدا خبری داره موقعی که ما گفتیم ال حرکتو مبتلا خبرش کجا رفت میگوییم توقوی الازولاتی این جمله هست جمله میشه اینجا چی؟ خبر خبر هم جز مرفوعاته مثل مبتدا میگیم جمله ما محلن مرفوعه چون اعراب جمله ها محلیه تو که جمله جای خاصی نداره که ما اعراب بشوییم. یک جمله میگیم محلن مرفوع اَنَّوَافَتُ تُنَشِّتُ الْجِسْمَ به این یه ترکیب جمله قبلو داره انتا اطاعت الامیره انتا میگیم مبتدا محلن مرفوع چون اعراب مبنی ها محلیه و این زمیره و زمیره ها مبنیه ها تمام زمیره ها بلا استثناء چیه پس میگیم انت مبتدا محلن مرفوع اطاعتا فعل ماضی فائلش تا هست تو پیروی کردی الامره مفعول بی اطاعتا الامره پیروی کردی امرا که اینجا هم خبر ما جمله هست از صلحفاتو زحفت از صلحفاتو مبتدا زحفت فعل ماضی هست مونسه چون زمیر هیه درش مستطره به مونس برمیگرده به چی برمیگرده پس فعل ماضی با فائلش که هیه باشه میشن یک جمله میشند خبره از سلحفاتو که مبتدا هست این تا مثال بزرگوارن اگر دقت داشته باشید خبر ما از نوع غیر مفرد بود از نوع جملهش بود از نوع چی بود؟ جمله بود ولی از نوع جمله فعلیه یعنی خبر اینجا جمله فعلیه بود تو قویل ازولاد تو نشت الجسم اطاعت الامر زحفتا اینا همه چند؟ زحفت اینا جمله چند؟ فعلیه. حالا سه چهار تا مثال میزنه برای زمانی که خبر جمله باشه ولی جمله اسمیه باشه. جمله چه باشه؟ اسمیه. مانند المحذبو بگیم میگیم مبتدا مرفو با اصدقاء او کثیرون میگیم اصدقاء او مبتدا دوباره هو مضافنله کثیرون خبر اصدقاء او خبر چه؟ اصدقاء او. المحذبو که شد خبرش کجا رفت میگیم جمله اصدقاؤو کثیرون که خودش یک جمله اسمی هست شامل مبتدا و خبره میشه خبر برای مبتده اول المصباح و ضوءو شدیدون به اینی مثل جمله اوله البنتو و جمالو و به اینی ترکیبش مثل جمله اوله التجار و شعارو هم الصدقو مثل اولی. میگیم اتوجارو مبتدا مرفو بازن به شعارو مبتدا هم مضافون از صدقو خبر شعارو شعارو هم از صدقو که یک جمله اسمی هست میشه خبر برای اتوجارو محلن مرفو پس در این دو گروه از امسله خبر ما از نوع جمله بود در امسله قسم اول خبر ما از نوع جمله های فعلیه بود و در مثل دوم از نوع جمله های اسمیه الکتابو فلقیمتاری در این جای کار اگر دقت داشته باشید فلقیمتر جمله نیست شبه جمله ببینید جار و مدرور و ظرف اینا شبه جمله بشون بگن فلقیمتر آی جار و مدرور هست یا نیست پس اینا این, گروه این قسم خبر ما شبه جمله الكتابو میگیم مبتدا فلقمطری میگیم جار و مجرور میگیم این جار و مجرور که میشه شبه جمله میشه خبر برای الكتاب اثرجو علی الفارسی المطر من الصحابی النجات فی الصدق تمام ترکیب شده اینجوریه بیاید امثله گروه بعدی القنطره فوق النيل پل بالای نیل المتنزه ومام البيت الساعه تحت الوساده وسادین بالشت الراحه بعد التعب این هم ی ساده راحتی بعد از خستگی خب راحتی بعد از خستگی است خب اگر اینجا دقت کنید فوق و امام و تحت و بعد اینا ظرفند اینا چیان؟ ظرفند پس اینجا هم فوق النیل النیل میگی مضافن الیه البيت الوساده التعب اینا همشون مضافن الیه هستند اینا همشون چیان؟ اما فوق النیل امام البيت تحت الوساده بعد التعب اینا که شبه جمله اند بیشتر خبر و محلن مرفوع قاعده و م کتاب بیایید اومدید قاعده و م کتاب بله کما يكون خبر المبتدا مفردن يكون جمله فعليه همان طور که خبر مبتدا مفرد واقع میشه در درس قبلی شما نبودید. النمی رو شریسون، الکلبو، الیفون، النجم رو لامعان. شما دوندن نفرت. اونجا خبر مفرد بود. خبر چی بود؟ کلن ما اونجا شش تا هجده تا مثال داشتیم که کلن خبر از نوع مفرد بود. منظور از مفرد یعنی این که یک کلمه ولی اینکه مسن جمع باشه. بهش میگن مفرد. مثلا آلبنتان مجتهدتان میگیم آلبنتان مبتدا مجتهدتان خبر ولی از نوع مفرد ا در حالی که مشتهداتن مصنعه ما از این زاویه نگاش نمی کنیم. از این زاویه که یک کلمه یا جمله از اون زاویه نگاش میکنیم متوجه شدید پس کما یکول خبر المبتدا مفردان همانطور که خبر المبتدا مفرد میشه مفردی که در مقابلش جمله و شبه بیاد. یکونو جمله بیاد یکول جمله فعلیه خبر جمله فعلیه میشه مانند 4 مثال اول او جمله اسمیه تن یا جمله اسمیه بیشه مانند چهار مثال بعدی او شبه جمله تن یا شبه جمله بیشه مانند هشت مثال بعدی شبه جمله یعنی چی؟ ای ظرفن یعنی ظرف او جارن و مجرورن و جارو یا جار و مجرور پس شبه جمله رو خودش برای شما گفت که گفتیم یا جار و مجرور یا ظرف صد و پنج یجی با انتشتمیل جملتو الخبری الابمیرن یربطوها بالمبتده واجب است که جمله خبر درش زمیری باشد که ربطش بده این جمله رو با مبتدا دقت داشته باشید یجیبو انتش ملا جمله الخبر علا زمیل به توها بالمبتدا واجب است شامل شود جمله خبر زمیری را که اون جمله را ربط بده به مبتدا حالا بیایید برگ بگردید حرکت تو تقوی ازلات در تقوی زمیری هست که به حرکت برمیگرده رد میده این جمله رو با مبتدا در انوافت تو نشتو همچنین هی هست در انت اطعت الامیر تا هست بله انت اطاعت تا هست اطاعت در اطاعت یک وجود داره دیگه تا اطاعت تو به بی روی نه مطابقه با انت هست مطابقه با چه هست از سلحفات و زحفت هیه هست در المهذب و اصدقاؤه هست المسباهو دو او هست البنتو جمالوها ها هست التجارو شعارو هم هم هست مطابقت داره به ما قبل بیایی درس بعدی دقت داشته باشید ما دو تا جلدو خوندیم و شما سروران اینجا نبودید با شما دو سرور اینجا نبودید ما در این دو درس قبلی ما ببینید خودم. مبتدا داریم خبرش داریم مبتدا داریم چی؟ خبرش مثل زیدون قائمون زیدی ساده است به زید میگن مبتدا قائمون خبرش ولی روی مبتدا و خبر قبلا ما یک سری نواسیخ رو خوندیم یعنی اینه و اخواتش کانه و اخواتش اینا رو ما خوندیم. اینا روی مبتدا و خبر میان اعرابشو عوض میکنن. مثلا اگه کان بیاد، مبتدا سر جاش مرفوع میمونه ولی خبر منصوب میشه. کان زیدون قائما. اگر ان بر برعکس، مبتدا رو منصوب میکنه خبر رو مرفوع. ان نزیدن قائمان. کان زیدون قائما. ها؟ اینجوری. ما همان ترکی یک سری قوانینی رو در دو درس قبلی خوندیم اونا مرتبط به خبر مبتدا بودن گفت خبر مبتدا میتونه مفرد بیاد ولی مطابقت داره با مبتدا مطابقت داره با چی؟ با اون چیزایی که شما بودید و خوندیم حالا ما خبر نواسخ رو امروز میخوریم. نواسخ چه هستن؟ کانه و اخواتش ان و اخواتش اینا رو انشالله شما قبلا تو اجرومی خوندی، توی قطروندار رو شما خوندید دیگه نه قطروندار دیگه 20 برابر این کتاب دیگه خوندی اینا رو این مال ابتداییه ولی مروری میشن احکاماتی رو که مرتبط به خبر نواسه خاصن زمانی که جمله یا شبه جمله باشن امروز میخونیم دقت داشته باشید در امثله کان المریزو یتعلمو کان المریزو همان ترکه. همان ترکه خبره کانه و اخواتش میتونست مفرد بیاد میتونه جمله بیاد و میتونه شبه جمله بیاد میتونه جمله بیاد و میتونه چه بیاد در این مثال دقت کنید کان المریضو یا تعلم و من ترکیبش میکنم تا مرور بشه کانه میگیم از افعال ناقصه هست المریضو اسمش مرفو با زمه یتعلمو فعل مزاره هست هو که به مریض برمیگرده گرده فاعلش هست پس خبر کانه کجا رفت؟ میگیم یتعلمو که فعل هست با فاعلش میشه چی؟ خبر کانه پس همانطور که خبر مبتدا میتونست جمله فعلیه باشه خبر نواسخ هم میتونستی باشه؟ جمله باشه و شبهش اینجا از نوع جمله هست کانه شتا و بردو شدیدون کانه میگیم فعل ناقصه از شتاو اسمش مرفو بازمه بردو میگیم مبتدا ها مزافونله شدیدون خبر بردو بردو با شدیدون که یک جمله اسمی هستن میشند خبر چی؟ خبر کانه پس اینجا خبر کانه از نوع چی بود؟ جمله اسمیه از نوع جمله؟ اسمیه پس اینا رو خوب یاد بگیریم ها اینا خیلی لوکاتریزیه پس خبر کانه و اخواتش خبر ان و اخواتش میتونه جمله باشه جمله اسمیه میتونه باشه و میتونه جمله فعلیه باشه و میتونه شبه جمله باشه مانند این مثال کانل ماء فی الکوبی کانا میگیم فعل ناقص اسمش فلکوبی جار و مجرور شبه جمله اینجا خبر کانه شبه جمله است شبه جمله دو نوع داریم جارو مجرور و ظرف این جارو مجرور بود این چی بود؟ کان الحارسو خلف البابی کان میگیم فعل ناقصه الحارسو اسمش مرفوع با زمه چون اسم کانه و خواهاتش جز مرفوعات و خبرش جز منصوبات خلفه میگیم ظرف منصوب با فتح البابی مضاف الیه مجرور میگیم خلف البابی با هم که شبه جمله است خبر کانه محلن منسوب محلن منسوب بیاید امثله بعدی طائر الطائر یغنی کانه رو مثال آورده بود الان یکی از اخواتش رو آورده کانه اصبحا و لا باته این از از اخواتشه یعنی همون عملی رو که میکنه اصبح میکنه ولی دو تا مثال برای واضح تر کردن مسئله آورده کانہ الطائر یغنی چی طائر الطائر یغنی اصبح میگیم از اخوات کانه الطائر و اسمش یغنی فیل هو فائلش که به الطائر برمیگرده یغنی که فیل با فائلش هست یک جمله فیلی هست خبر اصباحه هستن محلن منصوب چون اسم کانه و اخواتش مرفوعه و خبرشون جز منصوبات ولی چون جمله هست میگی محلن منصوب اصباح الورد و رائحته جمیلتون اصباح از اخوات کانه الورد و اسمش رائحتو مبتدا و مضاف الیه جمیله خبر این مبتدا و خبر میشن خبر اسبه محلن منصوب اسبح الكسلانو في حيرتين اصبح از اخوات کانه الكسلانو اسمش مرفوع با ضمه فی حیرتين جار و مجرور شبه جمله هست محلن منصوب اصبحت طل فوق الازهار تلی شبنم اصبح از اخوات کانه اتلو اسمش مرفوب با فوق الاظهر این هم شرح جمله از طور ظرف و محلن منصوب ان المجدا ينفوا نفسه الان از اخوات از نواسخ دیگه آورده ما گفتیم کانه و اخواتش هم نواسخ مبتدا خبرند ان و اخواتش هم چیان نهاسخا حالا انه رو مسار زاده ولا علرو. إن رو انه و انه و ليته و لا عله لكنه انه از اخواته انه هستن ان المجده ينفعو نفسه انه بيجي حرف مشبه بالفعل المجده اسمش منصوب ينفعو فعل مزارع هو فاعلش هست كبه مجد برميگرده فعل بافا نفسه مفعول به هيا ينفعو هست هو هم مضافن اله بيجي فعل بافاعلش خبر این نه است. خبر چه هستند؟ اینال ولد زینتهو الادب این هم ترکیب شما انسان قبلیه ولی اینجا جمله ما اسمی هست. اینا الولد اسمش هست زینتو مبتدا هست خو مضافنله الادب و خبر هست مبتدا با خبر میشند خبر این نمحلن معرفو آ ببینید کانه اسمش رو مرفو میکنه خبرش رو منصوب ان و اخواتش اسمو منصوب میکنن و خبر را مرفو اینا رو تو ذهن داشته باشیم ان الله عزیزن کان الله عزیزن آ اینا رو باید تو سرا داشته باشیم ان الحیاه من الیمان. اینجا حیا اسم ان هست منصوب من الايمان جار و مجرور شبه جمله محلا مرفوع این الحکم بعد تجربهی بعد تجربهی از نوع ظرف شبه جمله است بیاید روی 13 14 15 لعل از اخوات ان هست الغائبه اسمش هست منصوب یا اودو فیل با فائل که هو هست خبر لعله هستن محلن منصوب لعله امتحان اسئله سهلتن امتحان اسم لعله است اسئله مبتدا و مضاف الیه خبر اسئله هست مبتدا با خبرش میشن اسم خبر لعله لعل محمد في المنزل تركيبش في المنزل جار ومجرور شبه جمله است خبر لعل است فلم ابراته فوق فوق الكرسي همچنین فوق الكرسي از شبه جمله است از نوع ظرف و خبر لعل است موحلن منصوب صد ده بیایید قاعدهش خبر كان و اخواتها و خبر ان و اخواتها خبر کانه و اخواتش و اخواتش كما یکونو كل منهما مفردان همان طور که خبر کانه و اخواتش میتونه مفرد باشه خبر ان و اخواتش میتونه مفرد باشه یکونو جمله فعلیه جمله فعلیه باشد و جمله اسمیه و جمله اسمیه باشد و شبه جمله و شبه جمله هم میتونه اینجا دقت کنید کانه زیدن قائما ان زیدن قائمان اینجا خبرش خبرشون از نوع مفرد یا غیر مفرد غیر مفرد بود میتونه غیر مفرد مشکلی نیست روی نه صرف و نه بطور خوب کار کنید اگر ضعیف بودید هیچ مشکلی نیست شما امروز سه درس, بیشتر درس بیشتری بدیم یا نه کافیه خوب. اگر شما میگید یک درس دیگه هم